حکایت یکی را از ملوک عرب حدیث مجنون لیلی و شورش حال او بگفتند که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام عقل از دست داده. به فرمودش تا حاضر آوردند و ملامت کردن گرفت که در شرف نفس انسان چه خلل دیدی که خوگ بهایم گرفتی و هر که اشرت مردم گفتی، گفت و رب و صدیق نامنا فی ودادها ها، علم یرها من فیوزه لی اسری. کاش آنان که عیب من جستند، رویت دلستان بدیدندی، تا به جای ترنج در نظرت بیخبر خبر ها، بریدندی تا حقیقت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی که فظالکنا الذی لمتننی فی ملک را در دل آمد جمال لیلی مطالعه کردن تا چه صورت است موجب چندین فتنه فرمودش طلب کردند در احیای عرب بگردیدند و به دست آوردند و پیش ملک در صحن سراچه بداشتند ملک در هیئت او نظر کرد شخصی دید سیه فام ضعیفاندام در نظرش حقیر آمد به حکم آنکه کمترین خدام حرم او به جمال از او در پیش بودند و به زینت بیش مجنون به فراست دریافت گفت از دریچه چشم مجنون بایستی در جمال لیلی نظر کردن تا سر مشاهده او بر تو تجلی کند. ما مر ذکر الهما به مسمعی لو سمعت ورغ الهما ساحت می یا معشر الخلان قولو للمعا. فی لست تدری ما به قلبل موجه. تندرستان را نباشد درد ریش. جز به هم دردی نگویم درد خیش. گفتن از زنبور بی حاصل بود با یکی در عمر خود ناخرده نیش. تا تو را حالی نباشد ما حال ما باشد تو را افسانه پیش سوز من با دیگری نسبت مکن. او نمک بر دست و من بر عضو ریش.